اللہ الرحمن الرحیم دوستان. والحمد لله رب العالمين و الصلاۃ و السلام علی الله. صلی الله علیه و علی ائمه الطاهرين و علی آلهم. اللهم ارحمنا بر یا رحمان الواصفین. عرض شد که علمای ما در در از روایات انصافاً مطالبی رو که در اینجا قبول کردن و فرموندن یه مقدار مختلف یه مقدار خرد شده بین خود مبارس نجوم و خود حقیقت نجوم علم نجوم یا اون چه که عنوان پیشگویی و این خبرها بوده و یک مقدارم بین اون جاهاتی که مربوط به شریعت و این کفر از کفر میز حرام است این جهاتی که پیش آمده دیروز یک مقداری از کلمات مرحوم شیخ باهایی کنده شد آخرین کلمه ایشون چون هم کلمه شیخ باهایی سرم میشوند سینا نقل کردن در صفحه دیویس و نرد و آخر کلامه فلیس لنا زن اعتمادون علا اقواله شیخ رئیس کرده که اینا قابل اعتماد علم هم همین میگه قابل اعتماد این قابل. و این سلم نامتبره این انجمی ما یعطون این معتبرین است اصلا جزء اصل موضوعی ما میگیم حالا اصل موضوعی میگیم که حرکتشون درست، مقدماتشون درست، لکن اون مقدماتی مثلا وجود یک تقریب یک حالتی داره تاثیر داره این درست اما این که این که شما دریم یک این نادرست این ثابت نیست اما جمعی ما یا اتو نام مقدماتی مال حکمیه، اون مقدماتی یا حکمیه را بگوییم حکمیه فلسفی، حکمیه که مقدمات حکمشون. میشون. اون برای اینکه اصلا من با مثال ازمیکنم؟ به قول ایشون احکام اینها رو ببینن مثلا سنخه احکام که حتی من یه مقدارش رو انس کردن در روایات ما هم سابقا کنید که امام پرمودن یه مقدار که بخوام ببینن که چطور مثلا اینها احکام صادر می کردن و هم در کتب خودشون کتبی که در این فن بوده متعرض شدن و هم در کتبی که به اصطلاح در روایات ماست ببین در کتاب قصص علماء قصص علماء قصص علماء راوندی الله که این عبارت قصص علماء قصص علماء قصص علماء رو مرحوم صاحب و بهار از صفحه سی در این جلد پنجه تا صفحه و سی و حالا این من همدن میخوام بخونم که چی شده که مثلا در تاریخ ما کیفیت جهل و دست و اینها راه پیدا کرد مرموم راوندی به اسنادی یه هم صدوق یه از علمان مستقرکر ما مثل راوندیو دیگران طرقی با آثار صدوق دارن و روایاتی رو از صدوق نرموند که الان در کتب صدوق پیش ما نیست الان موجود نیست تو بحث تعدل هست, تعدل تعدل هست. زیاد داریم من نمیخوام خواهد بحث بشم لذا یه مقداری آدم تعجب میکنه حالا یا واقعا دو آثار صدوق بوده که به ما نرفیده یا احتمالا صدوق تریره مثلا این یک کتابی بود ما دیگه آهال دیگری از راه صدوق نه شده در فهرست صدوق فهرست یعنی روشه از راه صدوق نه عقل شده بلا اما همه نداره نداریم خیلی چیزا نرسود الان در کتبی که بعد از صدوقن اصنادشون رو به صدوق رسوندن اما توی آثار صدوق نیست مثلا ایشون از راه صدوق به طریق یعنی صدوق هنال حسین ابن علی که الان من ایشون رو تطریق نمیکنم خیلی ان حمزه ابن القاسم من اباسی فکر میکنم اینه همزت ابن القاس از به اصطلاح اولاد اباس ابن امیر مونین از دبال فرک باشه ان جعفر ابن محمد ابن مال کلیف هزارینی تضییف شده بشه در از اهل کوفه است و تضییف شده و حتی مرغون نجاشی میبین ترجمه ابو غالب شد نه ابو باییشون زعیفه شده شده شده و یه مقدار زیادی از روایات تحویلی توجیهی روایات عجیب قریب به ما از این شخص ما رسیده یعنی بلانستاد بلانستاد ما واقع برای اون مشهله در حدی که انسان حتی احتمال ورد بیشان میده حالا این علامتش چیه؟ اصلا بینیم این شخص که خرابی داره بعدش این محمد نه، حسین ابن زید زریا این از بزرگان ماست این همه ابن عثمان این هم خوبه قبدالله ابن فضل حاشین از اهل مدینه از, از بنی بنیه یه لفظ سنه خوب میشه از همین جعبر محمد از لذا این خیلی این مخب... من چون خیلی سخته مواقع میکنم قاعدتا این سنه های که راحت برایشون یا آن دیگه قاعدتا انسان خیلی راحت میتونه بفهمه که این جعفر جعبر این مشکل بوده حالا ممکن است بگیم وضع رسمی نکرده. یه ای توش بوده یه سندی هم به عبدالله بن فضل داشته بازش رو اون چسبونده مثلا یا تو اون ورقه این نوشته شده بوده چون دقت نداشه به مجردی که در ورقه دیده نغره کرده علتش ظواهر جهلم هم میخوره می‌خوره که دقیقاً یه دفعه یک حدیث نیست سندش خیلی خوبه یک انسان عجیبه در دروقت پیدا می‌کنی که بعد از اون سند خوبه خب این واقعا خیلی مش اون وقت صادق علیه السلام. آن کانفی کتاب دانیان این احتمالا یک نوشتاری بوده ورقهی بوده مثل همینه که اصلا برقای کنون برقای چاپ مکن مال فالبینی و مالبینی یک ورقه فالبینی بوده یک سردی هم برش به این درست کردند محمد ازن حسید زید ازن خطاب زیاد کانفی کتاب دانیان الاکان اولا یوم محرم یوم از بس انهو یکون و شتا شدید البرد. امسال محرم این ترجمه هم روش هست امسال محرم اولش چیه اول محرم امسال از بعد زمستانش کسی و ریه یک سروفی جلید جلید بعد برک و یخبندان برک نیست یخبندان یخبندان زیاد میشه و تقلیفی الهونتی گندم گران میشه و تقلیفی الهونتی و با و موت و سبیان و یک سروفی دقیق کردی بعد شروع میکنه؟ و يقل اثر کم میشه و صد کم همین به اصطلاح در اون کاش کیو یه نوع کم در حقیقت شبیه می قاشوها سمورو قرمشلی سمورو و یه نوع وساق یا به ساز چیزش یعنی خلاص بشین گوشه زمین حکم گوشه لامول و یه سمزدر امنال آفاز و, و یه سیب و, و مثلا در خطابش آفاز میرسه و بعد و کروم به انگورها میرسه و تخت با سنه و یه روم در روم هم جنگ مرگ عمومی واقع میشه و یه زوح عرب و یه شروفی همال زیاد برده میگیرن ولقنائم فی اید العرب و یکونالقلق فی جمیع موزه سلطان و مشیط الله این نجوم ایدا بود یک نمازش واسه این از شیعه آدم با یک سند خوب به ما به صادق نسبت دادن اونم به کتاب دونیان این که ای ما میگیم یک مقدار مشکلات در دنیای اسلام از همان قرن دوم به بعد پیدا شد اینه به اضافه به ولع اول المحرم بعد نوشته این مخصل و بعد در مغرب چی میشه در شام چی میشه در فرانسه چی میشه تا آخری دیگه من نمی‌خوام بعد نوشته اذن کسبه در شهر یکم چی خوندیم ما همیشه اینو خوندیم بالا انصار محرم چی بود. همون 11 شوال 12. نه محرم سالایا. ها، حالا چون محرم یک شلو برای یک شلو سبخری باشه. لذا خاد يوم اول المحرره انه يكون شتاء صالح. زمستانش مناسبه که سیر نیست و یک طول باران زیاد میشه. و بعضی از اشجار زر اشجار که من زرعم یعنی کشاورزی زمینی رسان اشجار درخت اخوان زراعت آقا ویکون اوجان مختلفه و موتون شدید موت شدیدی رو حالا این کجای بزرگ الان میگه تو اندونزی موت میشه و دل و یک سوف الحراء الزباب یعنی بهسا مرگ به یک شایی چیز در میاد و یکونو فی آخر سنه بعض الغلاف اتحام فیلن که از اما اول سنه شده و یکونو خلافیل سلطان فی آخری خیلی مختصد میشین خیلی شانت رو محرم بعد مثلا ایشون و ادنکست رفت شمس فی محرم بعد ایشون بعد در محرم اگر کسوف بشه، الا انهو یوسی برناس او جاون فی آخر و امرازه کونو من سلطان زفن کدون سلطان هم نیاری ظاهرم مرایش همون سلطان در همین مثلا ایران و همین قسمتای مرکزی بوده و بعد از اینکه سفر قمره و فلی محرم واسه خصور رو فنهو یموت و فلی مغرب رجران عظیم و ینتق رسال از پاکهه بلجبال میبوهای گوهستانی کم میشه و یک آفن ناس خارش بدن مرزون میابسه در کسور خصور و یک رحمت عرض بابر که بابر خیلی بابل جزی از ایرانی هله ایران بابره چیلی اسم بابل داره ایران چرا دیگه نیم خواهانه بکنن در الان یک سطحه دوسته سطحه از این احکام نجومی را به خصوص و اول سال اینها را اسم امام سال دقیقت شما شاید کنم تحجیل میکرد لبیجه شما که آسید که مجلت اللت. ببینید علت معدوم که شما نیم خواهد آخه گفت این یک قصاصی بود. بود منبر بود که در یک کساز اون گردی که حضرت یوسف و فالشون دردائی بود این از خواهی منبر نبود. بود گرد دروغ بود گرد او خیلی خواهد که نبال بسید شما بود دروغ چیه دروغ چی روی دواله علتی شید این بسرم اونگاه نیشه نخورده حالا چون دواله علت عدم ده گردی بعد شاید نمیتونم بیم که دروغه دیش شاید هزار شاید گفته دیش حالا بعد محوم راونگی فرمودن که به جمعی عدالکی بعدش قالم راونگی این سحق روایات دانیال نبی علیه السلام یکی مجمع ملاح مرحوات زب دنیا لگاه قال النبي صلى الله عليه واله اذا اراد الله قوم من خيرن امطرهم بالليل و شمس او خب چرافيمون داره واقع خب در این که بهترین بارون ها بارونایی که در شب باشه روزم آفتاب باشه تا اون حالتی که به دردی که شاوردی میخوره منتظر بشی دیگه بحث ما اینجا نیست بله و اذا قعدن الله على امتين ولن ينزل بهر عذاب اگر فرزت این غلط اسوارها قیمتاش بالا میره خاطر عمرها عمرشون کم میشه لم تر به تجارت و سود بازرگانیشون میاد کنیم، و لم تز خمارها میباهاشون خوب نمیشه خراب میشه و لم تنظار انهارها نرها و های اونها پر آب نمیشه و حقص انها انتارها بارانشون کم میشه و سند تعلیح ها اشار, اشار ها اشار هم برای اون خب این یک امر تقریبی نیست وقتی به اون پیشبینی هایی که به دانیال نسبت داده شده وقتی به اون نظر این که راوندی این روایات دانیال هم نه الانا تطبیقشون ازا صحت روایات تفسیر به این روایت دیگه کردن اینم هم انصافا هم خیلی عجیبه مثلا حالا من برای شما یک مقداری خوندم مثلا در اختصاص مرحوم شیخ مفید حالا چطور شده اینا به این کتاب راه پیدا کنه این یعنی خیلی عجیبه یعنی واقعا واقعا مثلا در اون زمان این حرفا رایج شده بود یه شیخ مفید اصلا اختصاص معلومسون شیخ مفید باشه حالا مقدار زیادیش که احتمالاً مال یک شخصی در قبه آمده در عراق و اگر اونجا فرود کرده ما رو اونه شیخ احتمال از اونه بارد اون بحث الان نمه خواهد باشه ای لفت من الان از اختصاص شیخ مفید بعد بعد تازه نوشته که این رو ما از خط ابن حسن ابن شازان نهر این حط ابن حسن ابن شازان قیلی برد کاندانه فضل شازانه یه واضین بحثانی چیز خودش طولانیه ارزشی نداره. ببین من برای نمونه اقلم این در اخصاصش اضاقرنس زهرت و محل مریخ این در ذهن توی که این چجور احکام میگن؟ این احکامشون اینجوریه که خب طبعا دوشید شما دارد تمام اینا روزوه بطلال مرد فی برژن واحد داریم حقیقت ملک و روم فازشا روم نیمیگه و یکونو به روم مسیبات و اضاقرنت مه زهر کانف الامش شدتون وزیر و اضاقرنت زهر مه المشتری اصاب الناس و خامان و اضاقرنت زهر مه اطارون یکون احراق و دماغ و فتخان عزیز حال این فتخ کجا میشه؟ اینا نداره، نظره؟ و اضاقرنت قرنت بهرام مه زهر ملکه ملکون حدیث چی عرض زالک البرج اضاقران ملک عظیم و شهر مثلا به اضافه فلان تجار ان تجار و والخص تجار نرهد و کلاله که اهل العدم و اگر اونطور بیشه تغییر از دنیا فیسار الاحوال و تغییر امور الناس و تخت و خوارش این گروه های چی میان اصطلاح از گروه های مسلح و زنده نظام مثلا و خرسته و تخلصه خواره شدن نواهی کلها و خاص من جیلان از گیلان و دیلم و افراد من که کردستان مثلا درش این مشکلات دارمشی و گیلان تو توی روان گیلان و دیلم که مشکل ندارم و یخصرون اناس یعنی واقعا یک چور احکامی حالا من در این اینا باطله که شوهی نیست این من چطور اینها به کتاب شیخ مفید مثلا راه پیدا کرده این هر عجیبه عجیب و غریب یا به کتابهای مثلا این رو بلکه نخوندم حدود دو سطحه دو سطحیت کنتر مرموم مجلسی آوردن خب این هرچی رو که از شیخ رئیس نرم کرده که اگر اصلش فعیی باشه یا درست نیست نه اصل این درسته نه این فرعش درسته ترتب چین آثاری کاملا یعنی مطالب غیر سریعی این راجبه یک مقدار از بحث و اما اون جهات فقریه ما برگرده به جهاز فقهی ارز شد که به لحاظ جهاز فرقی در کتاب مرحوم شیخ صدوخ اول آمده در کتاب نحجو یا یاکم و تحلم علم النجوم آمده مرحوم سیر محسزا شدید داره که روایات میگه مالای احسا کسرتن دیگه یواشاش واضحه بعدها این دیگه جا جام در کتاب فقهیی مثلا در اینجا علامه در کتاب منتحد مطلب چون مثلا حدود 700 سال قبل این کتاب بوده از تنجیم ها حرام چون از که ما در تنجیم یه بحث ما جهات این که درسته درست نیست واقعه واقع نیست خصوف چیه خصوص چیه حسابات چیه اخبارات اینها روشن شد یه بحث این حالا آمد هست کردیم از اوالی که پیغامت احرک کتابی هم توش بود اما از که در معظم کتاب احراغ کتاب نیامد. قال از تنجیم و کذا تعلق نجوم لکن من انها معثرتون او انله ها مدخلن به تأثیر به نفع و ذرن. این مدخل بودن حالا معثل بودن, بودن رو توضیح نمیده چه نفع از مدخلی هن. زاد ال جمله كله من يعتقدوا رفع حرکات النحسانيه که مثلا من خوشحال میشم ناراحت میشم علی مصطفی اینو میگن طبیعیه مالی که زمین مثلا چی کی میشه چیزی میمیره چیزی زنده میشه مثلا بهارش پر میشه کم میشه به حرکات الفلكیه این دادنش به حرکات ولی اتصالات کوکدیه حرکاه این رو توضیح نهده مرحوم علامه چه نهده رفتی بده خب اگر نیسان گفت آتش سوزن در سوزنده، خب این رفتی به آتش داده اگر گفت آدم که درد میگیره یخ میگیره سردش میشه یخ سرد میکن آدم رو اینم رفت کنه و نظام مرحوم شیعه حضیقی آشواشو بارد میشی در برست فخی اگر به قدمه مکاسب رو بر گفت برگرفت آنها عربعه چون این ک یواشهاش از اصطلاحات تقیی بارد شد به انصافه هم ما هم باشیم انصافاً این مقدار عبارت مجمعه من اصلا کرارم یکی از نقاطی بسیار بسیار مهم در ماده قانونی حالا پس اون روایات یا غذر آیات یکی اجماعی داره که بعد حل بشه و حل میشه اما الان مثلا پس اون رساله های عملیه یا متون دینی که علام داده میشه این باید این نکسری مهم شروشن بودن و واضح بودن، دقیق بودنه اصلا ماده قانونی نوازه نه مجاز مجاز تو ماده قانونی نوازی آن چنایه نوازی ماده قانونی که از شمالش که سریع و روشن و معناه حمیقی و واضح و لایعن برا تحویی انسان خسلت ماده قانونی و ربط این حرکات به کواکب کافران و عقل رو به عجلت علازاله حرام رو حسن شد دیگه از قرنهای و هفته و هفته و هشم رسمن واضح فرسو و اما من یتعلم و نجوم قدر سیر الكواکه و بو و احواله تربیر داره پسوخ داره غیرها فه انهو لا بازه این هم مطلب علامه که تقریبا میشه مطلب علامه دیگه تقریبا زیر بنایی مسئله دیست که غالبا بعدها آمدن بدون شک در درجه اول محقق و در درجه یک معنای زدید تر علامه در انعقاد فقه شیعه در مرحله بعد خیلی محسره این خوب بدونیم بلکه اون مقداری که علامه گفته بیشترشون علامه کتاب بیشتر نمشته و خصوصا علامه استدلال داره و مخصوصا دعاوی اجماع داره جواهر اجما تا بعد ها موخر حتی مثل صاحب جواهر هر در سطح معاصر اون حساب کنید میگن خیلی به هر حال ذکر میشه جواهر علامه و ما این مباحثو در جایی متعرض شدیم که نیست یعنی کلمات مرحوم علامه قدس الله نعشه خصوصا که ایشون تذکر نوشته فقهای هم نوشته خیلی منشأ به اثر علمای بعدی و کلمات علامه از ایشون نتیجه فتواش اینه رفت حرکات روی کره زمین و افلاح این کافر کسی که رفت بده و اقضی اوجه همه هرام تعلمش همه هرام اقضی اوجه این همون بحثی بود که مثلا ما اگه یاسون باشه عوالت صاحبه وسایل رو خونیم ایشون همه همه افلاح دو؟ مثلا رو بله خب مشکل حساباً مشكله بعدا اینکه هر تو تبیین ظاهرش راستیش من من نمیخوام بگم ظاهرش که ایشون حرام میدونه خب انسان مشکل داره اگه راست هر وقت بدیم با به ما به کفره کفر نه همون حالو نه میدم اجازه احتمال میدم احتمال خودم چون مثلا متدیمین و عدیان م... یا مت... ملتظیمین به خدا معتقد بودن که خدا مثلا در آسمان هاست به اداره امور میکنه، این یک مقدار نجوم حساسیت ایجاد کرد اما فقط زمین و گیاه و گلگازبون و این یک چیزا اون حساسیت ایجاد نکرد. خب چه این کسی گفت گل گلگازبون در با تحصیل داره سرماغازی از رایی می این کفی نیست که این چه پایی داره علایکی گفت نجوم زهر در ما تاثیر داره باران زیاد میشه چونه کوه میشه <تصفح> مثلا احتمال بودن اختصاص نجوم اشباره که من گفتم عبارت نیست چون تصور این بود که خدا مثلا در آسمان اداره زمین میشه اینا می‌خواستن بگن در مقابل این قول نجوم در آسمان اداره زمین میکنه اون چه که ما در زمین داریم به جایی که به خدا نسبت بدن به نجوم نسبت بده و نژاد در مادیای جدید در این کسانی که جایزا مادی و منکر خدا هستند دیگه دنبال نجوم نمیرن دنبال همون داخل ماده نژاد ماده حالا حرکت کدوم که سوال یه دهی از خود ماده که دنبال آسمونا فلک و ماه و قرص و ستاره ها نمیرن این سرش احتمالا به نظر من این بوده چون متدعیه همیشه توجهه به بالا داشتن به خدا و دعا میکردن در مقابل اون کسایی که مادی بودن به جایی که ایمان به خدا رو بردارن به جاش نجوم رو گذاشتن اونم تو آسمان ها این همه بهتون نجوم کردن بحث عجیبیه اصلا الان با این ستارگان و ها از این بحث رو نمیکنن اگر کسی مادیه تو همین دنبال مادیه دنبال آب سبنادی همین آب همین خاک همین گوش بدن مادی رو مادیه اینجونه به احتیاج به علت میدونه دنبال اون هر میره. میدونه ربتم هم همینطور شما بیان ربتم بینیم گلگاوزون رو خب چی ماشه چرا کافه میگه نه اگر ربت نجون بینیم کافه من فکر میکنم تو مطلب در بحث کفر و ایمانش هم بر یک مقدمات خاص بوده اینه که ما الان ختینال میخوریم تعجب میکنیم چون خب آ همه شما یا دقیستان از یا دانشگاه بالاخره با مسالله جای آشمیم تو دنیای نکی رو میکنن که ماه بالا میه که این و او وری از صحبته از تو پیشی ماها مح این برای اون افراد که محکوم بودن و من و سر نه از خبر داشتن. مش گودایی از ایجیاش، شاید در بحث جبال اینها میگه مثلا من در مازندران کوههای مازندران که رفتم دیدم که هر زیر زیر پای ما بود خب این براتون تازگی باشه کوه بلند بریم اینجا از اما الان چیزی که هواپیما سواش اینها از ابر بالا که حد ابرارو از اون اقمار صناعی مثلا این بحث ابر و مرو و خورشید و ماه و, و این ارزش ها کلا براتون یاد داشتم اصلا کلا محره نیست اصلا کلا اون سنخ تفکر شیخ واسطاره این دفعه مونثوئه. تا تا زمان شیخ یه مقداری شاید این تاثیرات بوده ولی نه ها به قضیه اینه که شیخ آماده گفته نحوی ربع حساب بکنیم حتا همین اصلا فرق نمی کنه توی ماه باشه نور ماه باشه نور خورشید باشه نور مریخ باشه هر نوری باشه نور اینا سیاراتی که دورتر هستن. دیگه سیارات خاصی دیگه دارن که تعبیر می‌گه این قضیه‌ای که اینها میگن نداره. بعد من میخوام انتباری بهش هم بگم که بعد وارد بحث نهایی بشم ان و قال شیخ و شهید که و مافی فلاره و خب انصافش اینه که باز هم مباشرت واقعا شیل اول یکی از بزرگان مسئله انصاف بن من حق شیل اولش راست نشود ما کسی به این درجه که هم به لازم و اصول و قواعد اصولی و تحلیل فکری و قضاوت فکری در این درجه بالا باشه ما الهام تتبع در روایات و حتی روایات ظریف و مجادات اینها واقعا فوق العاده است نفس از مرحوم حاجی نوری می‌فرمایند که ایشون از محدثین اعظم لچی است شیل اول نه دوم محدث اعظم در اسلام کسی که تمام رواشی شعر رو دیده باشه بدون استثنا اصلاشون بهار با مجلسی جزه معحدث اذن نگرفت اما شهیدوره واقعا هم همینطوره شاسته فقلاده شهید اذن میگم ارزش شناخته نشده اما خب دقت بکن انصافاً با تمام احترامی که خود من واقعا داریدشان احترام قالم. خب مدبرتون لهاول در عالم و خب این دو با هم فرق یه چیزه. موجد چیز این دو تاره جمع کردن به یک حکم وردن خب یک کسی آمد بگی این اعتقاض باطل مطلبانون مطالب <تص> اما کافره <تص> مطلبان آخر یک کسی آمد قرآن رو برده و المدبراته هم رن خدا و نشیده برای تدویر آلم روزه این مدبرات همین ماه و خرشید و مرگی خبا گفت دید چه مشکل روی شما میگیده باید این رو تحیید میکنه اثبات میکنه باطل خب باطل س به انصافن یعنی کردن به این جمع کردن بین این دوتا بگه موجد اتون بله موجده موجده خالده اون بحث دیگر ایه اما مدبر اتون مدبر استقلال مدبر استقلال مدبر استقلال یعنی چی خالد پس باید شرق باشه نه کافه باید بگه یعنی خدا خالد اینهاست اینا خودشون مدد برن یعنی واضحه نیست این او... یه مقداری باید انصافش من معتقدم چیز ونه اثرات انها تفعل الاثار المنسوبه الیها والله سبحانه و العادل المعصر العظم كما یقوله اهل العقل فهل مختون این تعبیر خیلی زیباش میگه این کفر نمیذاره اما این باطله راست هم هست حرف باطله اما کفر ایجاد نمیکنه. این مثلا گرانی که زمین میشه باران که ما هماش مال نجومه ارزانی راحتی فادشایی میمیره زنده میشه کنند به دنیا میاد تمام مال نجومه خیلی خب باطله ازلا حیات لحاظه کواکف ثابته به دلیگه نهقی و نهقی خب اون حالا از اون راه امروزی و از راه دیگه لده ازال اشعری راست این همه هستون هم. یه مقدار مشکل که متاسفانه از حال ما احتمالاً به نهی صلایش را درش واخت وجود همین ها بوده چطور همه مثلا, مثلاً اشعریهای تنرو زمان ما همدریهای تنرو بودیه وحاوی و میگن زیارت خبور شرکه مثلا همه بود زیارت خبور خسقه سلمنا را پرسون به احترام یکی بکنه مثلا این درست نیست باطله اما واقعا ادعای شرک اونم راجبه کیسی که کی میاد سرد میشه مرده که دیگه مرده دیگه چی میشه مثلا اداره عالم میکنه خودش مرده خودش اصلا نمی‌تونه گردش اداره عالم میکنه اون <تصفح> بعد از اشعریه یکی از اواد گفت میشه یکی از قال شد یا در یا خودش نه گفت میشه دیگه بودش سعودی میوم این گفت که شما شیعه ببین خانل جرایی خب من پیش گفتم حالا حرج کن شما خیال مبینی مثلا شیعه بیشتری تو ایران و افغانستان و پاکستان هست یعنی شما خیال مبینی مثلا تو عرب یه شیعه نیست بزنه گم نه هم گفتن انسان عرب چطور مبینه خانه در امین اگر امینش چطور خانه <تصح> اگر خانه چطور حالا فقط تو رو بیفرمنه این کلواد رو لیکن عرب که میفرد آخه آدم یه حرف معقول خانه؟ آخی اگه یه امینه چطور بیخانه یه <تصح> خانه <چطور عمینه؟ تصح> <اگر> بیخانه؟ <تصح> اگر خانه الان چی بود یکتا یک پاکستانی هندی، و اونکه یه تظاهر میکنه، اون داری حالا این آخر مورد شبیه خداست، یه لذت لاین و بعد ول اشاریه یو کسرانه حالا کمای و اور اورد و علاوه اندفس ادم تفکیر و کل منقال به تقل ابد. این مطلب درسته رسید. یعنی اگر برکرد آوال هم گفتن که چطور مرتضره میگن خدا بشر رو خردتر و در اختیار بشر در کارها من رو در دیگه خدا ستارگان هم کرد و این کارها رو در اختیار اون گذاشت این مطلب راستگی، این مطلب باطل هست اما کفر نمیاره شبیل این مطلب و مربوط مجلسی در ذهب روایاتی که در باب به اهل بیت هست اگر در مرااتل عقوق در ذیل روایات فضل ان الله فضل علی النبی و در اون باب و دارون اگه خاصن مرااتل عقوق کافی رو کنن، در ذیل اون باب در کتاب گلچی در اون باورد. این مسئله واسه ایشون مطرح می‌کنه که ما بیان بگیم که خداوند ائمه را خلق کرد، مخرمز را از سنان دست حیات را از سنان موته اونها رازقان، اونها موهیان، اونها ممیان، اونها رد تمام این صفات رو خودش رو از ما و رو صفات رو اولیا رو به اخیار اینها رازه دنیان دنیا رازه به وجود کل هستن اینها خالقن، اینها رازقن، اینها محیل ایشون میگه این مطلب امکان داره خود دقش بکنی ام و مثلا شاه ظاهر بعد ظاهر اما اثبات نشده ای خیلی ایشون هم شدیه ای رو اینجا میگه که من گروه دارم ارسن میگه شو خب معتظره که در بشر میگه خب در می‌موسیده لا در بشر نه خدا بشر رو خلق کرد در بشر قرار داد سر رو انجام بده دیگه خداوند این موجودات خلق کرد توی زمین تابستان و زمستان و زرع و کشاورزی و حیوان و نبات و عمر و زندگی اما این در اختیار ستاره‌ها قرار داد حاصل در نور ما در نور خورشید در نور زهر یک خاصیتی قرار داد که اینها با نزدیکیشون دور شده این کارها رو کنه انجام می‌گیره و این کارا رو اینا میکنه. ایشون میگه و رضایشون که تکفیر نکنیم خفر نمیشی گفت اما درست هم نیست باطل این مطلب فی نفس سالم و اورد و علا انفسه عدم تکفیر معتدر شما کافر نمیگاه تکفیر تکفیر کردن کافر و کل من قاله به فعل انسان این اشکالی شده بر اشائره و عجاب الاشائره و سر رو به انسان و او، من الهیوان یوجد دو فعله. که به لغین حیات داره و من ان من التزل... بله بند انسان غیر من حیوان وجود فعلو من ان ظاهران ظاهرون علی صلاح یحصل منه اهتمام در جانب ربوبیه نقد و رد در جانب الهی نیست بالاخره من این کتاب رو بر این فعل منه اما اینکه شما من تمام امور در کردن زمین مال افلاکه این مخالف ربوبیته به خلاف کواکب استظام یعنی نابود شدن هر زم هر هر قدا شدن این جنبه ربوبیت و جهت رو از بین نمی داره هرز نمی کنه نابود نمی کنه به خلاف که انها غائب چون عن فرادم عد ذلك ال اعتقاد استقلال ها و فتح بابل کفر یعنی زمینه کفه این انصافا فرقی نمی کنه اگر در بشر هم در کوافیب احتمال کفرد در بشر هم هسته ایچه فهم و ما یقان من ان استنادل افعال علیها که استنادل احراب علینا یعنی جز افعال تولیدی هست که اینها اصولا ایجاد نمی کنن. مثل ما من که میگم ورقه سوزندم کتاب رو سوزندم من نمی سوزنم که من کتاب می, می آتش که می سزونه. من توی آتش قرار میدم و در حقیقت آتش هم نیست اون بمواسیلی که بین دو تا است اقتضایی نمی‌کرده کس احراق ال نار محسن اشعری که غالب جریانات اندیات قبول ندارن من عادیات این روی کلام اشعری است به معنا عادیات هم در به عادته ان الله تعالی اج عادت آور این کواکه اذا کان ال شکل مخصوص قوه ان مخصوص یسه علمان ما و علیه ها خدا انجام میده این خدا که میسوزانه لکن با نزیشون کاغل با آتش و یکون ربط المسببات به ها ربط المسببات یعنی مثلا گرانی ارزانی کشاور مثلا وجود میوه که بودن میوه سالم بودن میوه اینها به ها به افلاک که ربط و عغضیه به ها اذا فولک دیوار بخور خوب میشه کولن قذار بخور داغر میشه فولن قذار بخور چاغ میشه الهی مجازا این یک استناد مجازی به اعتبار رقل عادی لن فعل الحقیقی نه این که حقیقتا فعل مال کواکب باشه فحالا لا یكثر و معتقدو هیچ کفر نمی آورد نه نهو وقت اون ایوان با. بازم اشتباه کردن راستاً هر چیزی در اینجا انصافاً دقیق و امکان اقل خطعن من ال اول لن وقوع حاضر آساب اندهار لیسه به دائمه ولا اکثریه پس بنابراین فوقهای ما در حقیقت آمدن از زاوی شرعی هم بررسی کردند که آیا کدوم مقدارش اونجه به کفر کدوم مقدارش اونجه به نیست. و این صافن چون کلماتو خود منجمیه هر پارفور اون چیزی در طول تاریخ به اسمونت جمعه نبوده که الان این مدارشو واقعا مختلفه این رو باید و همون زوابت آمی کفر و ایمان حساب کرد نه روی این خصوصیاتی که ایشون اینجا فرم در دروس هم چون ماله تقریبا شبیه تواهدشه خیلی بار میشه نمیشه یا آخرین عبارتی که ما در اینجا نکنمش مرحوم محقق کرتی که دیگه ج اجزال الله و تشریفه مرحوم محقه کراکی چون مرحوم مجلسی در دولت صفویه بود هیشون دیگه رسا همه کاره دولت صفویه در اساس مرحوم محقه, محقه کراکی سر زمان شاه تحماس سر شاه اسماعیل اول شاه تحماس نامهی میدیسه و تمام امور دولت رو دولت رو در اختیار به تعلیمشان محقه شهری شهری با همه کراکی مرادشون اصطلاحن اون زمان بیشون شه عدیه عبداللاله کرکی از لبنان به اصطلاح که واقعا مبلغه قراردادینس انصافا ایشون هم هر به مدتی مدتی مدت از ناجیتون صافی نظر خوردن میونن برای اداره امور در ایرانش پلیسی وایل در ایران شهرها رو می‌رفتن پروندهای دادگاه‌ها رو نگاه می‌کردن اوضاع رو بررسی می‌کردن بعد می‌گفتن یکی از سفرا بود که باعث شده ناجی که آقای ناجی احمدی اشاره شده واقعا هیجری نمیشه خانم رسوله می‌دونن که شهید فنا روشن کی ایشان سم داده میشن دارن جو مصمم میشن که اجازه ایشونا بده اجازه میده. و قال المحدث شیخ علی اجزل الله تشریفه از تنجیم و الاخبار احکام النجوم. این تنجیمی که ما میگیم حرامه، اخبار به هر احکامه نه به حرکات، احکام. این عباراتو مگه حافظشون چون که تو کشید. حافظشون خوب باشه، اولین مطلبی که شیخ انصاری تو تنجیم آورد. اصلا تو تنجیم ایشون فعلاً از تنجیم کمائن جامع مقاصد اولین عباراتی که از جانشینان اخیر عبارات بود اولین عبارات شیخ طنظیم همین عبارت محقق کرکی بود الاخبار عن احکام میتون به اعتبار حرکات فلکیه و اتصالات کواکبیه اذلتی مرجع ها ال قیاس و تخمین این ای اصطلاحی بوده در قدیم در مراسل علمیشون در امور طبیعیشون که مثلا که شما از کجا حکم میکنید این الان در ملکب جدید همه با تجربه و آزمایش و تجربه و عربه دیدن در اصطلاح قدیم میگفتن تجربه یعنی این کار انجام دادید دو قیاس اصلا در کتاب علمیشون تبیشون و غیر تبیشون این یک اصطلاحیه مثلا شما از کجا گفتید که مثلا با مثال بابونه این اثر داره یه دفعه یه تجربه و یه قیاس. این یک اصطلاحیه قیاس در اصطلاحین ها یعنی روی این نوع تخمین و حفظ قریبه هست مرادش اینه قیاس اینا قیاس المنتری و نه قیاس به انسجام دست همه هست هیچ نیست یعنی فرض مثلا من دیدم وقتی نور خورشید خیلی در شدت و ابر اونجا بود این طور شد پس حالا که اون مثلا شبیه این در جایی دیگه شد پس اون اثر باز بیاد یه چیزی اینجوری مثلا من با مثال میگم پس مسئله من دیر در در مثلا گلگابدون زادش چم گرم بود با مثال چون در دل داره مثلا لبش مثلا گرمه گفتن گرم بابونه هم در داره هم اونطوره پس این قیاس استفاده کردن که این بابونه گرم باشه اینجوری تجربه نکرده بود این اصطلاح قیاس که میگفتن که به تعبیر میشن تخمین به تعبیر منطقی به تعبیر به حساب منطقی در صناعت شمس الحد الصغيب من الحد اگر بخوایم اصطلاح منطقی شده اگه ببینیم که در باب سمعات خنز در برها جز روی هست یقینی یاد گرفتن حد سیاف حس این حساب میکردن که در سواه یاتون باشه مثلا میاندن میگوستن ما نگاه میکنم در حال خصوف اون سیالی که روح ما ده خط مثل دایره مثل هلاله پس نتیجه میگیرین که زمین باید دایره باشه کره باشه آه مشخصه رو می‌خندید. آه یک نوع چه نمی‌دونی حس غریبه از حس می‌بینی؟ میگه من عکس زمین رو ماه دیدم شبای خسوف دیدیم، میگم چه دیگه خسوف شد، دوست ما پیش. این عکسش مستقیماً نیست اون سایه هلاله، مثل انصاف مثل, مثل یه دایره است، مثل اون کمان دایره است. پس از این ما میفهمیم که این به حساب سایه زمینه پس میفهمیم زمین زلینگ کرده. این رو چون به اصطلاح تجربه نکده کرای ماه از خارج زمین هستی زمین رو جیبیه حالا دیگر نه هر وانه این مال اون زمان بود از این میفهمیدن این میگفتن چون عکسی که افتاده بی این صورته تا زمین باید کراه باشه مقدمانش بستیر میزنن ها هست قریب از حس این رو اصطلاحا بهش قیاس میگونم مورد من از قیاس اینه در مقابل این تجربه بود که چندش پیشم چند بار داشتم کردم در بعض از خطب دروشتی کسی 50 سال نوروز رو مراقبه کرد اون مش مثلا سال بوده این خالی کرده 50 سال نوروز رو مراقبت کرد مثلا داشتم میگفتم امسال نوروز داشت در... مثلا شنده بود آثار رو اون سال نمیشید امسال نوروز دوشنده بود آثار بعد تا 50 سال هی نوروز نمیشید اومده جامعه بینینی شنده و شنده و دوشنده رجع کرد دیدی ممکن داریم 50 تا 6 بار شده بوده 7 بار 8 بار یک شنبه بوده مختلف میشه اینا رو جمع کردی وقتی مشترک حساب کرده واسه اینه گرفته این یعنی چی تجربه یعنی اصطلاح شد این بود اصطلاحاً توضیح داده می گفتند به تجربه در غیاث اصطلاح غیاث مرادشون از غیاث هر غریب به حس یا تخمین یا فن و مرادشون از تجربه به این معنا است اون احکام هستیم یا تجربه هست، یا تخمین. هست مراد از تجربه این قسمت کاره و مراد از تخمینم اون قسمت کاره اینشان رو برجمان روشن برای زمان یه اعباسی میخواهم چون آخر اعباسی هم کسمش بخونیم بله و قدرد از صاحب شر از نه یا تعلم نجوم به ابلغ وجوه و ما از کردیم تمام روایتی که خونیش هم انصافه همه ضعیف بود. جز اون روایت ایمانون به نجوم و تکذیبون به خدا. ای و اذا تقرر فعلا من تنجیم مردقاد ان نجوم تأثیرم که موجودات سفیه زمین. ولو و جهت المدخلی حرامون انصافا مشکلی هم. و کلا تعلم النجوم علا حاضر برس این که کلن مشکله. بل حاضر اعتقاد کفرون فی نفسه. اما تنجیب لا علاقات الوز من از تحرر زهنه که راست تو مندیبین دروغ هم زیاد دروغ به این معنا واضح نیست مخلوق روی اعتماد روی کلمات دیگران محضوع به شکل جز میاره بنا فهنه اون جایز فقط ثبت کرایی تزوی جاسته رو هچ فل اقرح روایات از تزویر اقرح تماما زیبا سنده وزاده که منحال خبیر نه هم هو همه مخروحون و جبرائيل الاعتقاض الفاسه اعتقاد الفاسد وقدر عدم نهي و امر مطلقاً این حثما الماده رو فعلی چیزی مختصری الله علیه چیو که این